به نام خدای یگانه مهربان سلام آرام باش آرام باش چشمهای جوشان اشک را که چشمهای کودکانت را پر کردند به آنان را با قصه ها این ربایندگان شیرینی جلوه های ناکامی ها دلداریده وقتی افسانهای رو میخونیم گویی که سال هاست با آدمیه راستی راز افسانه‌ها در چیه؟ افثانه رو براتون نرمی کنم به نام افسانه لباس جدید پادشاه برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم دنیا با ترجمه از محمد غصا در روزگاران روزگاران قدیم پادشاهی بود که از لباس‌های جدید و رنگارنگ خیلی خوشش میومد. طوری که تمام پولش رو میداد لباس می‌خرید. این پادشاه نه به سربازاش اهمیت میداد، نه به مردم کشورش. حتی کاری به کار علم و هنر و اصبوری هم نداشت. اگرم یه وقتایی به سراغ این کارها میرفت فقط برای این بود که لباسهای تازهش رو به روخ این و اون بکشه پادشاه برای هر ساعت روز یه دست لباس مخصوص داشته افرادش هم به جای این که همیشه بگن پادشاه توی اتاق کارشه می توی اتاق مخصوص لباس هاست زندگی توی اون شهر عادی و معمولی بود اما مثل هر شهر دیگه‌ای، هر روز ادهی غریبه به خاطر پیدا کردن کار یا گشت و گذار به اونجا می اومدن. در یکی از همین روزها دو تا مرد زیرک به شهر اومدن و اعلام کردن که ما پارچه باف و خیاطیم و می‌تونیم بهترین پارچه های دنیا رو برای پادشاه ببافیم و با اون لباس های عالی بدوزیم. خلاصه چند روزی سر و صدای این دو مرد زیرت توی شهر پیچیده بود و بالاخره یه روز هم گفتن پارچههایی که ما میبافیم از لحاظ رنگ و لطافت نظیر نداره اما فقط آدم دانا باید اونا رو بپوشن اگه آدم احمقی لباسایی ما رو تنش کنه لباس رو به تن خودش نمیبینه چون لباسا نامری میشن هر کس نادون باشه این لباسا رو نمیبینه پیش خودش فکر کرد که اینا باید لباسهای زیبایی باشن اگه من از این لباسا بپوشم میتونم بفهمم چه کسایی عقل دارن و نادوناکی هستن بله باید هرچه زودتر دستور بدم تا اینا یه لباسی از پارچه های عجب غریبیشون برام بدوزن پادشا پول زیادی به خیاط‌های زیرک داد و سفارش کرد که هر زودتر زیباترین لباس دنیا رو براش آماده کنند. دو مرد زیرک با سفارش پادشاه برای دوخت زیباترین لباس دو دستگاه قلابی دست و پا کردند. بعد نشستن و شروع کردن به بافتن خیالیشون، اما در حقیقت چیزی روی دستگاه بافندگی نبود. مردها نخ رو برداشتن و توی های خودشون گذاشتن و تا خود صبح پشت دستگاه های خالی کار کردند. پادشاه با خودش فکر می‌کرد: ای hey کاش میدونستم که اینا درن برام چی دلم درم بخواد لباسی برام درست کنن که تمام پادشاه های دنیا از دیدن اون انگشت تعجب بدهم بگیرن پادشاه زود از فکر خودش ناراحت میشون چون که خیات ها گفته بودن هر کس احمق باشه نمیتونه لباس ها رو ببینه بنابراین با ناراحتی فکر کرد که بیشتر پادشاه ها احمقن پس نمیتونن لباس زیبایی منو ببینن پادشاه خودشون مرد و دانایی میدونست و یقین داشت که میتونه لباس ها رو بعد از تموم شدن کار ببینه پادشاه برای دیدن لباس های جدیدش لحظه شماری میکرد هر روز یه نفر رو میفرستاد تا ببینه کار چجوری پیش میره. پادشاه یه روز با خودش گفت خب امروز دیگه باید وزیر پیر و با وفام رو پیش بافنده بفرستم اون بهتر از هر کس دیگه میتونه پارچه رو ببینه چون که از همه ما باهوش داره و هیچکس هم نمیتونه به خوبی اون کارها رو راست و ریست کنه این شد که پادشاه وزیرش رو فرستاد تا از نزدیک پارچه‌های عجیب و غریب رو ببینه و پادشاه رو از پیشرفت کار باخبر کنه اختی وزیر نزد بافنده ها رفتید که پشت دستگاه های خالی بافندگی نشستن و مثل اینی که دارن کار میکنن وزیر چشش رو خوب باز کرد و بعد از کلی نگاه کردن با خودش گفت ای خدا من که اصلا چیزی نمیبینم چه بلایی سرمون اومده و باز بیشتر و بیشتر دقت کرد و چشم دوخت به دو مرد زیرک کند پشت دستگاه های خالی بافندگی در حال کار بودن، اما بازم چیزی ندید خیاطهای های زیرک که تعجب وزیر رو دیدن از اون خواهش کردند که کمی نزی تر بیاد بعد از اون پرسیدن که به نظرش نقشهها و رنگامیزی پارچه چطوره وزیر از ترس اینکه اونا نفهمن احمق و کودنه با دقت تموم به دستگاه های خالی نگاه کرد ولی بازم چیزی ندید با وجود این نتونست حرفی بزنه چون اصلا هیچ پارچه اینجا نبود وزیر با خودش گفت یعنی yani, یعنی راستی راستی من احمقم اصلا فکر نمی‌کردم که اینطور باشم حالا همه هیچ کس نباید این رو بفهمه یعنی من به درد مقام وزارت نمیخورم؟ نه نه نه پاچه نباید بفهمی که پارچه ها رو ندیدم نباید بفهمه در همین موقع یکی از خیات های زیرک گفت خب جناب وزیر ازم نظرتون درباره یه نقش و نگار و رنگ این پارچه چیه؟ به نظرتون پادشاه این رنگ پارچه رو میپسندن؟ وزیر از پشت اینکش نگاهی کرد و گفت زیباست واقعای که زیباست هم خوش نقشه هم خوش رنگ من مطمئنم که جناب پادشاه از رنگی که شما انتخاب کردین حتما خوشش میاد وزیر بعد اضافه کرد خوب من باید برم و هرچی زودتر به پادشاه خبر بدم که شماها چه لباس سیوایی برش درست کردین که نقش نگاری چه رنگی به به به به به بافنده های زیرک از وزیر ابریشم و نخ طلایی خواستن تا بتونن کارشون رو بهتر پیش ببرن و چه زودتر لباس پادشاه رو آماده کنن وزیر هم به اونا گفت من فورا کسی رو میفرستم که هرچه نیاز دارید برای شماها بیاره بفنده زیرک از وزیر تشکر کردن و دوباره پشت دستگاه های خالی نشستند و کارشون را ادامه دادن وزیر هم به نزد پادشاه برگشت پادشاه این بار یکی از دانشمندان شهر رو برای سرکشی به کارگاه بافنده ها فرستاد تا وضع بافنده ها رو ببینه اونم مثل وزیر هرچی نگاه کرد چیزی جز دستگاه خالی بافندگی ندید بافنده ها از دانشمند پرسیدن قربان ممیدین چه پارچه خوش و نگاری بافتین؟ بعد هم شروع کردن به نشون دادن نخش ها و زرافت های پارچه غلابی دانشمند بیچاره وقتی که دید نمیتونه پارچه رو ببینه خیلی دلش گرفت و با خودش گفت پس من اینقدر احمق بودم و نمیدونستم بعد آهی کشید و داد آه نه نباید کسی از احمق بودن من خبردار بشه وگرنه آبروی چندین سالم میره آخه من یه دانشمندم و بعد زیر لب گفت البته یک دانشمند احمد دانشمند با این حال شروع کرد به تعریف و تمجید از رنگ‌آمیزی و طرح پارچه و بعد با هیجان اعلام کرد به زودی لباس زیبا و شگفت شما بر تن پادشاه همه رو به حیرت و تحسین با می شما واقعا هنرمندید هنرمندهای تمام ایار خلاصه دانشمند پیش پادشاه رفت و با خوشحالی گفت قربان گربان لباس زیبای شما رو دیدم واقعا شگفتانگیز و زیباست من مطمئنم وقتی مردم اون رو تن مبارک شما ببینن انگشت حیرت به دهن میگینن چه رنگی، چه تره و نقشی این لباس زیبا قربان فقط و فقط برازنده شخصیتی چون شماست پادشاه که از شنیدن این تعریف ها دلش بیقرار شده بود تصمیم گرفت خودش به کارگاه بره و از نزدیک پارچه رو تماشا کنه این بود که به همراه چنف از کسایی که قبلا پارچه خیالی رو دیده بودن به طرف کارگاه دو مرد زیرک بافنده به راه افتاد پادشاه به همراه وزیر و دانشمند به کارگاه بافندگی رسیدند دو مرد بافنده هنوز پشت دستگاه های خالی نشسته و مشغول کار بودند وزیر با لحن چاپلوسانهای گفت قربان قربان ملاحظه میفرمایید چه طرحی داره رنگش رو هم ملاحظه کنید به به به به عجب حسن صلیقهای مرد دانشمند هم که میخواست از غافل عقب نمونه گفت قربان این رنگ و این نقش نگار فقط برازنده زنده شما است. پادشا حتی چی کرد چیزی ندید که ندید و با خودش گفت یعنی من که اصلا چیزی نمیبینم چه رنگی چه نقش و نگاری اصلا کودون پارچه و با ناراحتی زمزمه کرد یعنی من احمقم پادشاه احمق یعنی یعنی من لیاقت پادشاه بودن رو ندارم عجب مصیبتی پادشاه از ترس اینکه بقیه هم متوجه حماقتش بشن با لحن ساختگی گفت به به خیلی زیباست یعنی واقعا زیباست بله هم طرح و نقش زیبایی داره هم رنگامیزی خوبی من که حسابی خوشم اومد و بعد همونطور که به دستگاه های خالی خیره شده بود سرش رو تکون داد و زیبایی یه پارچه تعریف و تمجید کرد بقیه هم همراهان پادشاه هم نگاه کردند اما اصلا چیزی نمیدیدند با این حال اونها هم به شاه گفتن که خیلی زیباست اگه لباس آماده بشه پادشاه میتونه اون رو توی جشن عمومی که به همین زودی تو شهر برگزار میشه بپوشه خلاصه همه می عالیه آلیه خیلی زیباست پادشاه هم از حرف ها و بهبه و چهچه چه های اونا خوشش اومد و به خیاط ها شوالیه داد دو مرد زیرک شبی که فرداش جشن بود تا صبح بیدار نشستن اونها شب شونزده تا شم روشن کردند تا همه متوجه باشند که اونها برای آماده کردن لباس پادشاه چه زحمتی کشن بعد هم وانمود کردند که پارچه را از دستگاه بافندگی درآوردند و دورن با یه قیچی بزرگ اون رو میبرند کار برش هم که تموم شد پارچه رو با سوزنی که نخی توش نبود دوختن بعد به پادشاه خبر رسوندن که بله لباس آلی آماده است پادشاه با تمام درباریان به نزد خیات ها رفتن هر کدوم از خیات های زیرک یه دستشون رو بالا گرفتن جوری که انگار چیزی رو نگه داشتن بعد گفتن قربان این شلوار این کت و این هم جلیقه جناب پادشاه قربان ملاحظه میکنید چقدر ظریف و سبکن طوری که آدم فکر میکنه اصلا چیزی نپوشیده البته این به خاطر ظرافت زیاد لباس هاست که آدم اینجوری فکر میکنه تمام همراهان پادشاه با اینکه چیزی ندیده بودن یک صدا گفتند هجب لباس زیبایی خیات ها وانمود کردند که لباس ها رو یکی یکی به دست همراهان پادشاه می‌دند. همراهان پادشاه هم وانمود می‌کردن که اونا رو یکی یکی تن پادشاه می‌کنن. وقتی لباس پوشیدن پادشاه تموم شد، مردم همگی گفتن: آه چقدر پادشاه در این لباس زیبا شده. چه شکوهی، چه ابهتی. مسئول مراسم جشن مومی به پادشاه گفت: قربان کالسکی که مخصوص آلی جناب آماده است تا به کاخ تشریف ببرند پادشاه گفت من آمادم و بعد یه بار دیگه جلوی آینه چرخید و وانمود کرد که برای آخرین بار داره لباساش رو تماشا میکنه پادشاه را افتاد و همه به به و چه چه گویان به دنبال پادشاه به افتادند مردم توی خیابون ها و از پنجره های پادشاه رو تماشا می و می چقدر قشن، چقدر زیبا، چه لباس باشکوهی در حقیقت مردم چیزی به تن پادشاه نمی دیدن. اما جرأت نمی کردن. راستش رو بگن چون با این کار احمق به حساب می اومدن. و هر کس هم که احمق به حساب می اومد ممکن بود از کارش برکره بشه خلاصه همینطور که مردم کوچو و بازار و بزرگان شهر برای لباس جدید پادشاه بهبه و چه چه میگفتند دفعه پسرکی از میون جمعیت جلو دارید و با تعجب گفت چه پادشاه احمقی در مقابل این همه آدم فقط یه زیرپوش پوشیده اون وقت خیال میکنه زیباترین ها رو به تن داره هنوز حرف پسرک تموم نشده بود که ولولی برپا شد یهده گفتند این بچه راست میگه پادشاه که لباس نداره ادهیم که هنوز میترسیدن احمق به حساب بیان حاضر نبودن حقیقت رو بگن و این بود که خواستن پسرک رو بگیرن و حسابی تنبیه کنن اما مردم کچه و بازار کم کم جرأت پیدا کردن و دست آخر فریاد زدن پادشاه لباسی نداره پسرک راست میگه پادشاه لباسی نداره پادشاه خودش هم می حرف پسرک و مردم راسته و خودش لباسی به تن نداره اما از روی خودخواهی نمیتونست حرفش رو پس بگیره این بود که به همراهانش دستور داد اون رو با همون لباس خیالی به کاخ برگری افسانه لباس جدید پادشاه رو براتون نهر کردم برگرفته از کتاب افثانه های مردم دنیا با ترجمه از محمد قصا در روزگار کهن که آمه مردم از سواد کمتری برخوردار بودند افثانه ها و قصه ها از مناسبترین قالب ها برای انتقال تجربه های فرهنگی بودند هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالک پور ویرا سید فریبرز نوربخش اجرا مکران دوستی صدا هدیه سیفیکار ای کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدر